کش اومدی به این برسی امروز یه داستانی داریم از تحول و امید تحول با عکاسی کودک قصه یه زنه که بعد از یه دوره خیلی سخت با یه دوربین قدیمی و یکم راهنمایی کل مسیر زندگیش عوض میشه ببین کسابور کن یه نفر رو که تازه جدایی خیلی سخت داشته اونقدر سخت که حتی از مهریش هم گذشته بوده بی پول حال روحی خراب اعتماد به نفس پایین و خب هیچ مهارت فنی خاصی هم نداشته یعنی متنی تصویر خیلی خاکستری ازش میده اولش. حالا میخواییم ببینیم این تصویر چجوری رنگی شد. داستان از اونجا شروع میشه که این خانوم میره پیش راوی داستان که خب نقش مربی رو داره انگار و تنها خواستش اینه. میگه میخوام خودم رو نجات بدم حالش اصلا خوب نیست، خسته است، نامیده و فقط یه دوربین خیلی معمولی داره حتی فرق دیافراغ مشاتر رو هم چیز نمیدونسته اما مربی به قره خود متن یه نوری توی چشماش میبینه این جالبه ها اینکه که متن رو نگاه اون زن تاکید کرده نه فقط حرفش انگار مربی چیزی ورای اون کلمه ها توی چشماش خونده آره دقیقا شاید همون باعث شد که بخواد کمکش کنه یه جور حس درونی یه شهود دقیقا و تصمیم میگیره که کمکش کنه بهش میگه از صفر صفر شروع میکنیم و مسیر اقاسی کودک و جلوش میذاره میدونی سبت خنده های بچه ها قدم های اولشون اون نگاه های معصومشون یه راه نمایه خیلی پایهی هم بهش میده میگه فقط سعی کن یه لبخند واقعی شکار کنی همین اوایل خب اصلا راحت نبود براش متن میگه دستش می موقع عکاسی، همش نگران بوده که خراب کنه یا مثلا اکسا خوب نشن کسی خوشش نیاد خب این لرزش دست که میگی جالبه فقط بحث نداشتن مهارت نیست به نظرم آره یه ترسی هم هست انگار دقیقا یه ترس عمیق از شکست شاید و اینکه کم کم روی همین ترس فیزیکی غلبه کرده شاید همین به اندازه راهنمایی اون مربی توی ساختن دوباره اعتماد به نفسش نقش داشته. یعنی هم حمایت بیرونی بوده هم یه جور مبارزه درونی. آره، یه ترکیبی از هر دو و تمرکز روی یه کار خلاقانه اونم با بچه ها که پر از شادیین انگار راه فرارش شد از اون حال بعد. درسته نقطه عطفش یا اونجایی که همه چی یکم عوض شد وقتی بود که اولین سفارش واقعی رو گرفت یه آلبوم عکس تعریف میکنه که از خوشحالی زده زیر گریه به مربیش گفته انگار دارم موفق میشم اون لحظه انگار واقعا یه چیزی تو وجودش دوباره جرقه زد باورش به خودش آره این خیلی مهمه گرفتن یه تعیید بیرونی که ملموس باشه یعنی یه سفارش واقعی این خیلی فرق داره با یه تعریف خشک و خالی محصولا برای کسی که با کلی شک شروع کرده این موفقیت های کچیک اولیه حکم سوخت رو داره برای ادامه دادن دقیقا و خب از اون به بعد مسیرش باز شد دیگه سفارش‌های یکی لکی اومدن طوری که مت میگه توی کمتر از یه سال نه تنها وضع مالیش خیلی خوب شد که البته اونم مهمه ولی مهم‌تر این بود که انگار خودش رو پیدا کرد به توانایی هاش ایمان آورد الان دیگه خودش یه برند شناخته شده است تو کار عقاسی کودک سبک کارش هم خاص و خیلی دوست دارن. بله ببین این داستان قشنگ نشون میده که چطور تمرکز روی یه حوزه خاص یعنی همین اکاسی کودک به اضافه راهنمای درست و البته خب پشتکار خود اون آدم چقدر میتونه موثر باشه یعنی از یه وضعیت خیلی شکننده با یه دوربین ساده و دانش تقریبا صفر رسوندش به جایی که صاحب سبک و برند خودش بشه خب آره باریسی کوتاه بهمون نشون داد که چطور یه جرقه یا علاقه حتی اگه کوچیک باشه اگه با راهنمای درست و تمرکز همراه بشه میتونه یه مسیر تحول امیر بسازه حتی از دل ناامیدی مطلق اون زن تونست به قول متن با قلبی که دیگه محکم شده بود رویای خودشو بسازه و زندگیش کنه و این خب یه سوالی رو هم برای تو که میشنوی ایجاد می‌کنه دیگه که چه مهارت یا علاقه ای چه نوری شاید در درون تو باشه که منتظر یه فرصته شاید یه ذره توجه یه قدم کوچیک بتونه یه راهی رو باز کنه که نه فقط از نظر کاری که از نظر شخصی هم تو رو رشد بده شاید واقعا ارزش فکر کردن داشته باشه نه؟ ت مع؟ stay with me let's pretend and make me whole i've been searching for a long